و فقیرها خیلی فقیر بودند، آسیابانی در یک کشور کوچک زندگی می کرد. او اونقدر فقیر بود که وقتی مرد، تنها چیزی که برای سه پسرش باقی گذاشت، یه آسیاب، یه اولاق و یه گربه بود. آسیابان قبل از مرگ آسیاب رو به پسر بزرگترش داد، اولاق رو به پسر دومش، و گربه رو به کوچکترین پسرش ویلیام داد. ویلیام از این تقسیم ناراضی بود. برادراش میتونستند با استفاده از آسیاب و الاغ کار کنند و پول دربیارند. اما با یه گربه چه کار میشد کرد؟ ویلیام با خودش گفت: فکر می کنم با پوستش بتونم دستکش پوستی درست کنم. اما چه فایده؟ بعد از این کار دیگه هیچ چیز نخواهم داشت. ویلیام کنار جاده نشست همینطور شکایت کرد و غر زد گربه که خودشو به خواب زده بود سر تا پا گوش بود و همه چیز رو شنید سرانجام دیگه نتونست تحمل کنه و گفت ارباب اجازه بدین حرفی بزنم ویلیام پاسخ داد بگو من که کاری ندارم وقت دارم به حرفات گوش بدم گربه گفت اول از اینکه پدرت فقط یه گربه برات به ارث گذاشته اینقدر شکایت نکن. ویلیام با نراحتی گفت گربه عزیزم متاسفم فقط به این خاطر بود که من گربه گفت دوباره شروع نکن. ارباب، گوش کن. ویلیام سکوت کرد و گوش داد. گربه گفت اون چه برای تو فراهم میکنم ثروتی که نظیرشو به خوابم ندیدی به شرط که همونطور که من میگم عمل کنی بدون اینکه بپرسی چرا و به چه دلیل فهمیدی ویلیام فهمید که این گربه بسیار باهوش و زیرکه وقتی پدرش زنده بود اغلب حقه های او رو برای گرفتن موشها تحسین کرده بود این گربه زیرک یا در لای آردها پنهان میشد یا از شیرونی خودش می میکرد و ناگهان با پرشی شکارش رو میگرفت اما ثروت کردن او موضوع دیگه ای بود ویلیام نمیتونست تصور کنه که گربه چطور میخاد این کارو انجام بده به همین خاطر گفت من که چیزی ندارم از دست بدم حالا بگو چه کار باید بکنم گربه گفت ارباب یه کیف چرمی برام بیار ویلیام با ناله گفت یکیفه چرمی؟ چطور ماه و خورشیدم ازم بخوای؟ من آه ندارم که با ناله سودا کنم فراموش کردی که کوچکترین فرزند خانواده هستم و حتی یه پنیم ندارم به نظر میومد ویلیام برای همیشه غمگین بمونه اما ناگهان یادش اومد که یه جلیقه یه چرمی داره بنابراین گفت اگه باید کیف داشته باشی میتونم یکی برات درست کنم خیلی زود کیف آماده شد اما گربه خواسته یه دیگه ای هم داشت گربه یه جفت چکمه چرمی راحت میخواست تا خار و سنگ باهاش رو آزار نده گربه گفت ارباب، چکمه ها باید کاملا اندازم باشن نه گشاد و نه تنگ ویلیام دوباره شکایت کرد چکمه چرمی چطور ماه و خورشیدم بخوای من کوچکترین پسر هستم یه پنیم ندارم صبر گربه لبریز شد. میخواست بره که ناگهان فکری به ذهن ویلیام رسید. چکمه پاره شده بودند اما جنسشون از چرم بود. اگه اونا رو تعمیر میکرد میتونست یه جفت چکمه هم برای گربه تهیه کنه. با خودش فکر کرد، اگه این کارو بکنم بدون کفش میمونم اما جایی ندارم برم، پس اهمیتی نداره. سرگرم کار شد. و لحظه استراحت نکرد تا اینکه چکمه‌ها آماده شدن گربه گفت ارباب کاملا اندازه است حالا باید برم ویلیام پرسید کجا میخوایی بری اما گربه جواب نداد فقط گفت قرار شد سوال نکنی سعی کن خوشحال باشی همه چیز خوب پیش میره تا برگشتنم همینجا منتظر بمون گربه چکمه ها رو پوشید و کیف چرمی خودش رو به گردن انداخت بعد به سمت جاده حرکت کرد. میدونست کجا میره؟ اول به سمت انبار کاه رفت. روی زمین مقداری کاه ریخته بود. اونو برداشت و داخل کیفش گذاشت. کنار جاده کاهوی جنگلی رویده بود. یه دسته از اونا رو هم چید. اونا رو هم داخل کیفش گذاشت. بعد به طرف مزرعه جایی که لونه خرگوش ها بود راه افتاد. خرگوشی دیده نمیشد. چون همه اونا توی لونه‌هاشون هاشون بودن گربه کیفش رو جلوی در یکی از لونه‌ها ها گذاشت و درش باز کرد خودشم مثل شاخه درختی بی حرکت شد خیلی زود خرگوش جوانی از لانه بیرون اومد فکر کرد گربه مرده بنابراین بدون اون که بترسه جلو رفت کنار گربه کاهو و کاه رو دید که داخل کیف بودند بی معطلی داخل کیف پرید ناگهان گربه گفت دوست جوانم در دام من افتادی. میتونستی امتحان کنی و ببینی آیا مردم یا نه؟ اما تو این کارو نکردی. گربه بدون دلسوزی در کیفش و و خرگوش رو کشت. سپس به طرف کاخ به راه افتاد. گربه تقاضای ملاقات با فرمان روا کرد. او رو به اتاقی بردند که پر بود از فرش های گرانبه های ابریشمی. روا روی صندلی باشکوهی نشسته بود. گربه گفت: سر برم هدیه ای از لونه خرگوش اربابم براتون آوردم باعث افتخاره که بپذیرید فرمان روا پرسید ارباب تو کیه؟ گربه با توازو خم شد و گفت سرورم ارباب من یکی از اشراف بزرگه لرد بزرگه آقای مارکیز لوکرب فرمان پاسخ داد این اسم رو نمیشناسم گربه پاسخی به این سوال نداد چون ناگهان این اسم را انتخاب کرده بود به این دلیل که به نظر او فرمان روا حدیه پسر آسیابانی به اسم ویلیام رو رد می کرد گربه منتظر پاسخ فرمانروا بود فرمان هم با دقت خرگوش را نگاه می کرد سرانجام گفت خرگوش چاق و جوونیه از مارکیز به خاطر هدیش متشکرم اونا قبول می کنم. گربه با عجل برگشت تا ارباب جوانش رو در همان جایی که ترک کرده پیدا کنه. ویلیام اینقدر غمگین بود که حتی نپرسید گربه کجا بوده. فقط گفت همه چیز برای من تموم شده اگه از سرما نمیرم از گرسنگی خواهم مرد. اگر فقط یه آسیاب و یه اولاغ مثل برادرانم داشتم اگر فقط گربه فریاد زد بسه دیگه. مگه نگفتم تو رو من میکنم بیش از اونچه که فکرشم بکنی طوری که برادرات بهت حسادت کنن تمام چیزی که ازت خواستم فقط کمی صبره. ویلیام معذرت خواست و گفت حق با توه من یه نادون قدر نشناسم هنوز خیلی چیزا دارم در پرچین تمشک وحشی برای خوردن داریم در این فصل از سال هم در هوای آزاد خوابیدن لذت داره و تصمیم گرفت به مدت یه هفته غرغر نکنه گربه گفت حالا وقتشه که دوباره برم ویلیام پرسید چقدر طول میکشه؟ گربه گفت هرقدر لازم باشه گربه مستقیما به طرف مزرعه گندم رفت کبک ها در مزرعه دونه میچیدن گربه کیف رو روی زمین گذاشت و درش رو باز کرد با اینکه دونه‌های گندم زیاد بودند، کعبک‌ها می‌خواستند داخل کیف رو ببینند تا شاید غذای بهتری پیدا کنند. به این ترتیب چندتاشون داخل کیف شدند. ناگهان گربه پرید و فریاد زد: احمق‌ها، اگه نمی‌فهمید چه وقت چیز خوبی در اختیار دارید، سزاوار هیچ دلسوزی یا ترحمی نیستید. گربه در کیف و بست، کبکه ها رو شکار کرد و اونا را برای فرمانروا برد. گربه گفت: سر برم. این پرنده ها رو به عنوان پیشکش از طرف اربابم آقای مارکیز لوکرب آوردم. این بار فرمان روا با تعمل نکرد و گفت از جانب من از مارکیز تشکر کن اینا پرنده های لذیذ و گوشتالو هستند. بعد به گربه انعام داد تا برای اربابش ببره. ویلیام جوان افسرده کنار جاده نشسته بود اما با دیدن سکه بسیار خوشحال شد. پرسید کجا بودی؟ اینا از کجا آوردی گربه جواب داد ارباب گفتم هیچ سوالی نباشه اما اینا میگم این پول را با استفاده از هوش و زیرکی خودم به دست آوردم چند ماه متوالی گربه شکار میکرد و از طرف مارکیز لوکرب برای فرمانروا میبرد فرمانروا هم به عنوان تشکر سکه طلا بهش میداد حالا با این همه که دیگه لازم نبود ویلیام کنار جاده بخوابه و که وحشی بخوره ویلیام گفت مثل برادرانم آسیاب یا الاق ندارم اما گربه از تو متشکرم اگر ثروتمندترین مرد دنیا نیستم فقیرترین هم نیستم گربه گفت هنوزم باید بیشتر پول دار بشی تا اینکه یک روز شنیدند که فرمانروا دخترش رو با کالسکه در کنار رودخونه به گردش میبره همه دونستند که شاهزاده زیباترین دختر جاهانه اما خیلی خجالتیه و به ندرت از قصر خارج میشه ویلیام گفت کنار جاده میستم و بهش سلام میکنم گربه گفت نه تا این کار نخواهی کرد خیلی سریع باید بپری وسط رودخونه ویلیام گفت اما من که نمیتونم شنا کنم غرق میشم گربه جواب داد این به خودت مربوطه اما من اگه جای تو بودم به کسی که ماهاست هر هفته داره برام سکه میاره اونم سکه تلا اعتماد میکردم رودخونه به نظر عمیق میاد اما اینطور نیست ویلیام رودخونه رو نگاه کرد به نظرش عمیق میومد. اما از طرف دیگه خیال ثروتمند شدن او رو به شوق میآورد. با خودش فکر کرد مگر نه اینه که سرانجام روزی خواهد مرد و گفت بسیار خوب اون چرا که گفتی انجام میدم و خطر رو میپذیرم اینو گفت و بدون چون و چرا همینطور که کالسکه میگذشت وسط رودخونه پرید از اون طرف گربه فریاد زد کمک آقای مارکیز لوکراب داره غرق میشه کمک فرمان رفا کالسکه رو نگه داشت و به نگهباناش دستور داد تا به کمک مارکیز برن حتی شاهزاده هم خجالت رو فراموش کرده بود و فریاد میزد عجله کنید عجله کنید ویلیام که در حال غرق شدن بود صدای او را شنید قدرتی فوق پیدا کرد و در آب شروع به دست و پا زدن کرد و با زحمت خودش را به شاخه درختی رسوند تا اینکه نگهبانا او را با یه چوب بلند بیرون کشیدند گربه زیرک که دید اربابش نجات پیدا کرده پیراهن کهنه و شلوار وصلدارش رو زیر یه سنگ پنهون کرد بعد با ناراحتی فریاد زد خدای من دوزدار لباسه جناب مارکیز رو دزدیدند فرمان روا دستور داد لباسی از غفصه لباسها بیاورید بار دیگه شاهزاده به خدمتکارا تاکید کرد عجله کنید عجله کنید خدمتکاران به سرعت رفتند و با لباسهایی از بهترین نوع ابریشم برگشتند گربه با خوشنودی متوجه شد که چهره زیبای اربابش در این لباسها زیباتر به نظر میرسند همچنین متوجه شد که شاهزاده با تحسین داره او رو نگاه میکنه حتی فرمان هم آنچنان تحت تاثیر چهره جذاب ویلیام قرار گرفته بود که او را به کالسکی خودش دعوت کرد بعد گفت آقای مارکیز خواهش میکنم همراه ما بیایید ویلیام به اطراف نگاه کرد تا ببینه فرمانروا با کی داره صحبت میکنه اما در کمال تعجب متوجه شد که داره با خودش صحبت میکنه یعنی آقای مارکیز رو کره او هم شگفت زده سوار شد شاهزاده با خجالت نگاهش کرد و لبخندی زد این لبخند در قلبش نشست و عاشق شاهزاده خانم شد گربه لبخندی زد و به طرف مزرعه دوید که دهقانان در حال چیدن علفها بودند. با صدای بلندی گفت دوستان خوبم آبروی منو حفظ کنید اگه به فرمان روان نگید که این مزرعه ملک آقای مارکز لو شما را قیم قیمه, قیمه میکنم. فهمیدید؟ چهره گربه طوری بود که دهقانان از ترس بلافاصله پذیرفتند و هرچی که او گفته بود عمل کردند. چند دقیقه بعد کالسکه به کنار مزرعه رسید و فرمانروا محصول را تحسین کرد و پرسید این مزرعه مال چه کسیه دهقانان خیلی سریع پاسخ دادند آقا این مزرعه مال آقای مارکیز لوکربه فرمانروا رو به ویلیام کرد و گفت دارایی با ارزشی در این مزرعه دارید ویلیام لحظه‌ای درنگ کرد اگه فرمان میگه که او مارکیزه و دهقانه هم میگن که این مزرعه مال اوه پس دیگه جای بحثی نداره بنابراین پاسخ داد درست فرمانروا. این مزرعه هر سال محصول خوبی میده گربه به سوی مزرعه دوید که کارگرها سرگرم درو کردن گندم بودند با صدای خشن گفت دوستان خوبم آبروی منو حفظ کنید. اگه به فرمان روا نگید که این مزرعه مال آقای مارکیز لو شما رو قیمه قیمه میکنم فهمیدید؟ مثل علفچینها چین ها هم قبول کردند که وقتی فرمان روا از کنار مزرعه میگذره این رو بگند پرسید این مزرعه گندم با این همه محصول خوب مال کیه؟ دروگرا خیلی سریع پاسخ دادند که این مزرعه متعلق به آقای مارکیز لوکرابه به این ترتیب گربه جلوتر از کالسکه می و همه دهقانان و کارگران رو تهدید می کرد تا به فرمان روا بگن که محصولی که اونا درو می کند متعلق به آقای مارکیز لوکراب هست آنگاه منتظر کالسکه می ماند تا گفتگوی بین ویلیام و فرمان روا رو بشنوه فرمان روا گفت آقای مارکیز شما مرد جوان ثروتمندی هستید ویلیام پاسخ داد: سرورم باید از پدرم به خاطر میراسی که برام گذاشته تشکر کنم پنجره کالسک باز بود و گربه با شنیدن بازخه ویلیام لبخند میزد فقط گربه بود که معنای حرف او رو کاملا میفهمید ویلیام طوری به سروت پدرش افتخار میکرد که فرمانروا و شهزاد خانم تحت تأثیر قرار گرفتند گربه به سرعت خود را به یک قلعه رسوند نه یک قلعه معمولی بلکه یک قلعه بسیار بزرگ و باشکوه که مال یک قول بود و همین قول صاحب تمام زمینهایی بود که گربه ادعا کرده بود متعلق به اربابش است گربه با خودش فکر کرد برد و باخت حالا مشخص میشه حالا به آخرین و خطرناک ترین مرحله رسیده بود از پل گذشت و در زد غول در رو باز کرد و گفت چی میخوای؟ چی برای من آوردی؟ گربه گفت نمیتونستم بدون اینکه به بزرگترین غول دنیا عدای احترام کنم از اینجا بگذرم غول که از جواب او خوشش آمده بود او رو به داخل دعوت کرد گربه گفت به من گفتن شما قدرت فوقلادهی دارید و میتونید به هر شکلی که دوست دارید تبدیل بشید غول گفت بله، میتونم برای اینکه ثابت کنم خودم و میتونم به شکل یک دیگه در بیارم. غول بزرگ خود را به شکل شیر در آورد و شروع به غرش کرد. گربه از پنجره روی شیروانی پرید. اما چکمه او برای راه رفتن روی سخت مناسب نبود و لیس خورد و به سختی افتاد. بعد غول به شکل اولش برگشت. گربه چار دست و پا پایین اومد و در حالی که می گفت: میدونم که شیر فقط یه گونه بزرگتر از خودمه ولی اگه شیر گربه نیست پس چیه؟ اما انکار نمی که تا به حال اینقدر نترسیده بودم گربه وانمود کرد که چقدر ترسیده هیچ چیز نمی غول رو اینقدر خوشحال کنه غول به قدرتش افتخار می کرد گربه گفت به شکل شیر در اومدن کار العاده اما شنیدم که میتونی کارهای کارای جالب تری بکنی غول پرسید درست گفتم اما مثلا چه کار کنم گربه گفت اینکه که تو بزرگترین غول جهان میتونی خودتو به شکل کوچکترین موجوداتی مثل موش در بیاری البته من فقط شنیدم نمیتونم باور کنم غول گفت نمیتونی باور کنی خب پس ببین ناگهان غول تبدیل به یک موش شد گربه هم بخت خودش رو امتحان کرد و روی او پرید و او رو کشت و خورد. در همان لحظه کالسکی فرمانروا از روی پل عبور می کرد. فرمان قلعه رو از دور دید و خواست که نزدیک تر برند. گربه دوید تا به اونا خوشامد آمد بگه. سرورم به قلعه اربابم آقای مارکز لوکرب خوش آمدید. فرمان که تا به حال قلعه با این همه سرسرا و تالار ندیده بود، پرسید آقای لومارکیز آیا اینها هم مال شماست میخوام نگاهی به اطراف بندازم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم ویلیام با تعجب نگاه میکرد، آیا واقعا مال منه گیت شده بود گربه اینو گفته بود و حقیقت این بود که او ارباب گربه بود و میدونست که گربه اربابشو گول نمیزنه با خودش فکر کرد همه اینا مال منه و از همه مهمتر اینکه من یه مارکیز هستم. مارکیز دستش رو به سوی شاهزاده خانم دراز کرد و به همراه فرمانروا به سمت در رفتند. میز تالار پذیرایی چیده شده بود. چون غول منتظر مهمان بود. غولهایی مثل خودش. اما گربه میدونست که با حضور فرمانروا اونا دیگه جرأت کنند داخل بشند گربه گفت: سرورم آقای مارکیز لوکرب مفتخر میشن اگه شما و شاهزاده خانم با ایشون شام بخورید. مارکیز از شاهزاده پذیرایی میکرد. فرمان روا هم حسابی سرگرم خوردن بود. بعد از صرف شام فرمان روا به این فکر افتاد که مارکیز همسر خوبی برای دخترش خواهد بود. زیرا او هم جذاب بود، هم ثروتمند و هم خوش اخلاق. بنابراین گفت اگه بخوای با دخترم ازدواج کنی مخالفتی ندارم زوج جوان آنچنان مایل به قبول این پیشنهاد بودند که آرزو میکردند همون لحظه کشیشی اونجا باشه و اونا را به عقد هم در بیاره گربه میدید که اربابش اونقدر با زندگی جدیدش خوب گرفته که انگار از اول اونجا به دنیا اومده در واقع با گذشت روزها به نظر می که مارکیز فراموش کرده زمانی ویلیام پسر آسیابان بوده گربه فکر کرد <تصفيق> نمیدونم آیا او به خاطر داره که برای این خوشاقبالیش باید از کی تشکر کنه؟ به همین علت روی زمین طوری دراز کشید که انگار مرده حقه ای که در گذشته بارها از اون استفاده کرده بود مطمئن بود که مارکیز گریه میکنه و غمگین میشه. و دستور میده تا براش تابوتی از طلا بسازند وقتی مارکیز وارد اتاق شد و دید که گربه بی حرکت و خشک روی زمین افتاده یکی از خدمتکاراش را صدا زد و دستور داد این لاشه را از اینجا بیرون ببرید هر کاری میخوایید باش بکنید اما از اینجا دورش کنید ناگهان گربه مانند فنری از جا جست و به پای ویلیام افتاد و با سرزنش گفت این چجور قدردانیه؟ او نمیتونست جایی بمونه که براش ارزش قائل نبودد. از این رو از پنجره بیرون پرید و از زمین های اطراف قلعه گذشت. هیچ کس دیگر خبری از او نشنید. و در مورد آقای مارکیز لو کرب. تا اونجایی که میگفتند از رفتن گربه ناراحت نشد و تا آخر به خوبی و زندگی کرد. اما بچه های خوب آیا به نظر شما پاداش خوبی اینه؟ آیا باید از زحمات دیگران اینطور قدردانی کرد؟ به نظر شما کار ویلیام درست بود؟ بچه های خوب، آیا گربه سزاوار چنین پاداشی بود؟